اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عبس و به نام خداوند بخشنده بخشایشگر چهره در هم کشید و روی برتافت از اینکه نابینایی به سراغ او آمده بود تو چه میدانی؟ شاید او پاکی و تقوا پیشه کند یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد اما من استغنى اما آن کسی که توانگر است فانت لهو تصده تو به او روی می آوری وما عليك الا یزکه در حالی که اگر او خود را پاک نسازد چیزی بر تو نیست و اما من جاک يسعى. اما کسی که به سراغ تو میآید و کوشش میکند و و از خدا ترسان است تو از او قافل میشوی هرگز چنین نیست که آنها میپندارند این قرآن؟ تذکر و یادآوری است. و هر کس بخواهد از آن پند میگیرد. فی صحف مكرمه در الواه پرارزشی ثبت است مرفوعت مطهره الواهی والا قدر و پاکیزه سفره به دست سفیرانی نیست. کرام برره والا مقام و فرمان بردار و نیکوکار قتل الانسان ما اكثره. مرگ بر این انسان چقدر کافر و ناسپاس است من شيء خلقه خداوند او را از چه چیز آفریده است من نطفت خلقه فقدره او را از نطفه ناچیزی آفرید سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت سپس راه را برای او آسان کرد بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند چونی نیست که او میپندارد. او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است الانسان الى طعامه انسان باید به قضای خویش و آفرینش آن بنگرد ان صببنا الماء صبا ما آب فراوان از آسمان فروریختیم ثم شققنا الارض شقا سپس زمین را از هم شکافتیم انبتنا فيها حببا و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم وعنب و قضبا و انگور و سبزی بسیار و زیتون و نخلا و زیتون و نخل فراوان و حدائق قلبا و باغهای پردرخت و فاکیتا و و میوه و چراگاه متاعن لكم ولی انعامکن تا وسیلهای ای برای بهرهگیری شما و چهار پایانتان باشد فا هنگامی که آن صدای محیب رستاخیز رستاخیز بیاید کافران در اندوه عمیقی فرو میروند یا در آن روز که انسان از برادر خود می گریزد و اون و از مادر و پدرش و و بنیه و زن و فرزندانش لیگومر در آن روز هر کدام از آنها بس ای دارد که او را کاملا به خود مشغول میسازد. وجوهي يومئذ مسفرة چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی است اللهنکت مستبشرة خندان و مسرور است و وجوهي عليها غبرة و صورتهایی در آن روز آلود است درهاقها قتره و دود تاریکی آنها را پوشانده است آنان هم الكفرة همان كافران فاجرند